مارکردنی کردنی دلیر سلین شبتن شاد برزن خوشخالین لبشی نویمی خواندوی کتیبی چشتیم جوری حجار مکریانی حتی نویلاتن فرمون لگ بن جانی مکرانی برداوم د به لسګیرانوی سرګوزشتي یعنی خو و بس لا شعر دک مرخي شعر شته ک خدادادی او طب ای موزون د گل منډال د زور کس لاین وایا شاعری بمیرات لباو کوا بو منډال د چي امقصه زوري ريت چي دچي هرچونک بید منډال کلواني به به شاعر شعر شعری خلق راست د خو نه تا فرق لنګولور دک بلا ملمابینی هنرو شاعر ده فرق وجوازي هيا کسې ک هل لنګو لوری ته دانیه هونره بلالمشې شاعر لوشې شعوره وهاتو و واتهست هم هسته کې باریکو پرلمانه ناسک با موضوع نشنبه د تونی ناوي شعري لبنره کوابو وشې هستر بو شاعر پر بیاستو وشې هونر بو ناظم راستا ګراني بيجي خوويجي نخویندارو هونرن کله هوني نو دا لپاره جامندال کې د فرق شعري لنګو نا لنګ کا د تونی حول بداو بې شاعر سلام دوباره زوری شعری شاعرانی جورا جور لبیربیاو زوری مطالعه اکتیبی هم جور او تاوی طویی لخالی دنیای دارو باری خویه بیاو با کوتی وق میشنگین و بیم شیر لگلان حال مجیو لپش دستگاری کردنی کی وستیانه به شکل هنگین هیقب کاتو رنگان تو نم لسر او با سبرام چونکه مسلیکی زوگرینگاو زور, زور لپیاو عقلان قصیان لکردوه با باسی خمپکم باشتره بابم طبعی موزن بو شعر عربله بلام زوري رقله شاعر هلدستا ولا ابو هركز لكوردواريدا دبيت شاعر خوانانو دوی دبرو بسوالکری دجیو بسوالکی دمری مثال شی با حریق ملامارف کوکیده هناوه ک او دوانی لنزیکو ناسیبون حریق کمردو نانی شوی نبوه ملامارف حتا مرض سوال نامی بو هر پیوی خریش د نوسیو ای پاری دنانی بو ندنارد کدالیم بابم طبع شعری ها جارو بو جاروباره تاکا بیتی دنوسی جاریکیش فقینامیان به شعر لیه نوسی که هند یک قندو چاین بو بنیاریو بابم هل لسر وزن و قافی شعرکانی اوان جوابی دابونوا عزیزم شعرو بیتی تو گوتوتا هموی سوال و زلیلیو هاتو هوتا شتیکی زیاده قندو چا برالا نپوشاکا نپیلاوا نقوتا لباتی سوالی اسپا بی زیادی ورا ترکی کا مایی آبروتا او ناردم دزانم ترکی ناکی که خوی بد دجمنو داییم لدوتا رنگ شعری چک نبن بلام زور لوزنو قافی دار رکو اگر حولی دابا دیتوانی شعر به مامیکی دای کشم کناوی سید حمسایدی نورانیو یکی اک لانزیکانی شیخی برهانو ملیکی بناو بانگ بوا شعری زور نو زوری شعری چاکی هن بطایباتی قصیدی که کردی هیا کلتا بیتی سرطاکی پرگمه قلبم برشتی مهری مولا رون رایا زور زوربه تردستی پسندی شیخی خوی لناو چوار چوی سنعاتی کلاش چنین دا جی کردو تاوا باو بیت دوائی با حوالی پاشی منکر بیسری نوکی کلاش چون که اف اف والدوری پادشاهی دکا جا اگر طبعی موزون لباو کوا یان لبنمالی دای کوا بمنال بگا یان هرکسا با تنیا بشی خوی ورگریه من هر زور دالی طبع موزون بو زور زو هستمده کرد فلان شعر لنگو فلان راستو بی زدیا تازه شعر سیواتیکم هبو بابم دیوانی که ترکی پیدخوند موا شعرکا میعلي شیلی نوائی بوا منو ترکی خوای تو دزانی وکر لدود دا بیوا بو قط کلمه شم ماننه جارجار زانی جرجرل خوین ودا ګرین د کړه را دا وстам دی ګود بو نه خوینې تا دم ګود واب زنم تا ونیه تو را ده بو هتیو تو ترکی نه چو زانی چوزانی نه تاوی او تاوی شرکه چیا که خو ته مشهیده کړدی ګو بله لنګ فلم کلمه یې درچو ما لینا تا بله لنگا. هر زور به من دالی لترسی شر شعر نوک بدورنم زور زورم شعر لبر کړدم واملها تبو کمک بوری ددم تنانت جاریک لگوندیک ویستیان بو شره شعر بګج کورملایکم داکن وکریو اسب هر کس لسره هلب جردی خوې دبرې صوفي علی ناوګوتی اگر کورنی ملایدی بردیه وا مرګ ددم اگر ام کوراج بردیه وا مره ددن اگر ام کوراج بردیه وا دنی زورزو صوفي علی مرچی برداوه شوه کیش دګل چن فقیدا چوینګوندیک بناوی خورنج اغا روی خوش نبو. دیویست جواب مان که با بحانه وطی اگر با شعر کوری من باردن راتان زور بخیراتن هرچن من لوانی تر زور منالتر بوم سنگم در پرانده من آمادم به شعری فارسی یان هر به شعری عربی یان هر به شعری کردی شعری دگل کم با بو خوی بوم حلب شعری قصه خو من بی دروم دکرد شعر عربیم هر لبر نبو بلام هتی اغاز زور ترسا وگدالین با, با پاتیج نی فسیخوا، نازانم گلانیتر چونن، بلام هر بچک کرده که دوپی تو لطه که خوند توشی شاعر شعر بونده بیو، لای وایا اگر شعر ناله هیچ کار نیا. دتوانین بلایم، او کردانه که درسیان خوندوا ستی نواتی خریدی شعر دانانن. منیش هر زورزو توشی او نخوش شیبوم ملمنا بو شعر یان باشتر وایا بلایم مئر هونینوا. باروکبومو لاسای قازم دکردوا، قلم و دفتر بینو رشی که و نوی شعری لیبنی بلام شعر چی شعر؟ یخوا بنسیبی سی بی دجمناند بی نشم دویرا نیشانی کسی بدم نوگ بمکنه گال تجاری خوین براستی قصه قورو بن شربونو خونپیم وابو زور باشن بلام خوشم جوازیم لنیوان دادنا هندیکانم پیشاکارو حلبجرده تر بو بابم بیست بو یوک خری که شعرم جاور جوینم بوده باریو بسوین دیدرووا رش به مواقع من گناهی وام نکردو. جاریان بشه ارجوای نامه اغواک منو سیبو. چگلا و کابراه زوری تعرف کدو. عفریمی لکردم با خوشم لخوشیان دادگود فرم. پیام او هیچ مزیشکیلکی و دوزردنی نکردو. روزی غل سابله تاتکانی سرد تا تکانی شادرویش لای ای ملامارفی کوکی دانیش بومو دوای شعری تازیم دکر کلبری کم. چونک همو شعر کانیم لبربو. وګداب عربي پيشو من بوبم راوي ملامرف با منګه سر خورند نه ما موستا من شعر وکوتو ووتی دخو مو تکاله بر خاطر من مفره مباشر اگر پیت باش نه وو پيمله پیکني ووتی شعرش او سنات رزيلا خاطر ماتري دي وي دي بځنم شعر هر با شکم ک جواب نامه ک بو بخندوا کلب مو ووتی رولم امام مئ جنبو زور من دالاني هر استا بيدرينو خوتي لنامو مكا شعرم دراندو فرمدا پاشتاوه گوتي راستی بله هموهی خود بون یان لخلقیش دزي بو وتم هموهی خوان بون گوتي اگر راست بكي دوبای تيان شاعرانو رخو پیک بون اگر وقت اوانا بله به همیدم روشه وقت خوام لبرسان بمری جا اگر خانم آوابه دبه قرواش چون سگه بن اوشا کارکما دبه بيدرينم گو بیسیودو کردن دفترکانی دیوان جوانکم آگرتی بردانو خمده شعر و شعری ترکردو ببرای ببرای آورم و سر ندایوه روشگاری لوشتپا فقیه بوم روشه که که رحمانی حاجی بایزاغه هات حجره ترجیه بنده که شعری کردی و کردهیتی خوینده و کردیتی که زورم للا خوش هد زورم حولده که بیلیو بینوس موا گوتي خوانیان که خالمینه سویندی داوم وانکم و دست کس کبه. کل و نه همیدبوم، با خمکاوت مگاراگارو ترجیح بندی کم درس کرد. که اویش هر لالای خم مایو، با کسی نخوند و، چون کلام لاموابو روی مزه لسانیه. آخری آیش هم ل ناو برد. لبیر ما لو زمان داده کشیارم دادو، روجاک، دگل، فقیک، بریداد درویشتین فقید شعر ورده داو، هر باسی شعری باشو شعرانی ناو بدر کرد. منیش فرصت میاناو غزلی کم ل شعری خم باخن داو، و بخوا شعری چکه. او هي شیا ومتم شعر ی مستفٰی بجی کوردیا وتی هي هزاران اهفریم تو خوا او جارشی بخنوه دی سنزور لا خوشد گوتم سا والله خوا ما گوتی دادی ام جارشی بخنوه ام جارکه خویند ما و تفوی شکر د وتی مردوت مری کی اما شعر ا مقص قوره بل دا کبوب ما اندام کوملای جه کافو دیتم کوملا با آوه تاویا شعری هبنو هندک شعری پسند کراویانم دیتو لاموا بومنیش هرچونگ بید اتوانم وک اوانا بخون موا لخوشویستی کوملا بام دایوا سر شعر گوتنو بو به با شعری نچاریو لوسا و نازنوی شعریم بسرده سپا برابر یزستان بو چوب مو شعرو سرم لکوبونوی برادرانی حزبیده تگیشتم ککاکی من هندک سردو شعری بو سیون. چند شعره شاعرانی شعرانی پیدا کرده بود. گوتیان زورمان نیاز به شعرهای که انتشاراتی خومنده برهمیان همین شانده اینو زورگرینگا. من هیچ دنگم نکرد. که هات مو ده بری خوم و توانیم قصیده اقل و دروس کم. بلام زور دل کرمی بوم که آخو بکردید یا نا. شویک که لبوکان دگر میوانی که که رحمانی حاجی بایز آغای, آغای شیخ لر سید کامیلیش دوی میوان بو. باسی شعر و شاعرانی کرد دامز را. و تم برادر یکم شعره که داناو. سویندی داوم که ناوی نبامو نسخه ندم. پلام هندکم لبره با ورشناکم بکار بیت هندکم لا اقلو بخت خوندو سبینه کالو پیتاوم حلپچو ملویم کن کاکر رحمت د قلم هاته در دو اسپوسواریک لا وتم سواری اسبا امپیاو د غلطاده ګوتوم ته نسخې او شعرانه پیډن نری نه یتو د ظلم تو طاقت میوانی واتم کچن مانګ بخوی کی هر چی حولنده رزگارم نبو نچار هات مова نسخم نویسی او نردم، بلام نزنیم کرد بو. لجوابی که کررحمان دانویسی بون، با کردی پیادلم ل مگر ایراد. دیاری شوانه ولع علاقه ک. باو تاکه بیت تیجشتبوک او شیرانه ای خوانم. شیرکانی لبر کرد بون. جاریک با قاضی محمدی خوند بو و، بلام نیکوتبو هیچن. قاضی گوتبوی بنتیا. روز جمعه لسرمیم بربو خالکی دخوان مова. نید ابویا. دمو با هر که چو موشارو سرم لحز بالینا تماشام کرد و شعرکانی منیان لطایب داو بلاوی دکنو دا کاتگوتم شعری منو اوان نسخم بوه نوون و تیندسا دبی زور ما شعر بو بنوزی بلان چون که بناوی نناسراوی هجار نسرابون زور کس با ای خالا مینیان دزانیو زور درنگ تیگیشتن که او آگایی نبوا بوش ماردوی گوواری نشتی من دمتقی اکم دانو نشانی زبی که چاپی بکین ولی گرتو فریدا، و تو او هر زور عیبوش شعر نیاو، رنک به لاگوارد بی، بوقاکال رحمانم خواند و، باز به حقو من آودم متقبل و زور باشه، ز به حقو توی بالبراستیش تیچاکو چاپی دکن. هجای مکریانی لا گرانویست گزشتهج یعنی خودا باس لا ترسانویرند دکا. دنوسه منشوق زوربی من دلانیدی که کرد. هر له بش کو به شولبانو جند وکاو غولی بیابانو او شتانی کی هر نینو قط نه بون ترسند را بون چا چونکه او بلاو مجزاتانه هر له شود د دغرین له شود د ترسامو نخوازله تاریکه شود د د ترسام هر درکون پلام ترسک کمن همو رنګ وقت ترسی کاس نبه با ورنا کم هیڅ مندلک لخوم ترسن وقت تر ببه جاریک لخناقای شیخ برهان جنگی چشتنګ او چوبم لسرمرقدی شیخ قرانم تخوین جنگ سوریک بلاای سری بر حیوانی مرقد دا و زوز دگر. آوان دلی ترسام و خدبو جانم درچه. نمک را قرآنکا لیکنم. با جمیش تو حالاتم. بلام حالاتن. یواری دگال زیارت کران هات موا. قرآن لسر کرسیا با اولایی بجی مبو. هنام موا. شوآن همو پنجو داریکم لی دبو با جندوکو افرید. بته باتی ک زورم چی رو کی خیهی آوان خوایکانی بیستبو. بتنیا نم دویره سرکانی و سرکانیو چما نازم چون بو بریارم داک او ترسال لکول خم کم ورده ورده ورد, ورد غیرتمو برخوم دنا شو درکوتم تو زیگ دگرام جارک لگون دیا کن زیکی ساعت رایک لخانقا دور بو وقتی خوتنان گتم دچ ما خانقا لذی درکوتم حاشیه جلای دارن بدم با وا خوری عایق چمو خران حاری آشن ترسکی زوری و برنام لترسان دستم کرد بگورانیم لفر بسر قبرستان داکوتم کرغه بناوی دا درویش منو غورستان وشاو روح لچې کی سخت او درناچه هر هنده د زنم چاوم کون جان دو حالاتم د حالات نکم دا هار له جمو ده نند ویرا اور دموا لدنګ سګانی دی کی سر ریم او شير بوموا چونکه طرز لسګانیز زور بهیل بو رګام لدیل اداو لولواهات مو سره او لسګرزګار بو تو زیک دموچاوم لجوجشش تو پشم تاو هات و سرخو ملیار رگامگرد هاتم تا خانقاو چرا کنیم الله دور ود دادید ولیم لا پرو نکاو چی ببینم یک دانه جندوکی پیرجین لتانیش در حال تروش آو دستی دبرچنی ناو زخزخت ما شم دکا چون آرزو کوتن دامون آسمان حالی نکشم قاشم سذبون تفل دمم داو شگو باور دکی نکی؟ دستن کلاوا کمبرت برد، موی سرم واگرر وقت درځی ل خلاوا کمو در چوبون نه زانم څنګه شه تبم هندک ایتو دعا اندزنی کبو دمی وا بکار بی. به بلم چیل وادا ودا دعا مو ای لبیر دمنی حلم هزی قاچنی خو اگر ساعتی کې حلم جندوکه دوکه بدو شغاو دم گاته دیر اجل ماته و مبیرم دهت ک اگر لبران بری دجمنی کافر دا، پیو دس و ایمان نایلاج علاج دستی لرزوکوه با دروکه یکوه که با دست ماه بو خونبسر جندوکه ملعون داده دستوچه هم هموی بنوشی درو برین دار بو چون که جندوکه پول شیلانیگ بو لدم رگه جاوره لو دشته بطنیا خونبخون پیکنم ایدی لو و ایمانم بو همو چی روکننما که باسی جندوکو و غلده تنیان بو کرده بو زانیم او کسانش هر پنچکیک من چې کېχαν و او حالاتونو با ایم ماین وخت چې رو کې جن دوک دی تنگ راو تاوا ترسي تاریخ شو م لکم د کبوچی لجوری دیوار سپینات سمو اگر رشیان حال یرا لی پتر سم سپیای رو جوړ شو فرق چیا شوی کی باران برګه ده من مان دو بوم توشي قبرستان خاتم ک قبرکان ب بردی لوس نرابون. نرا بون بدم زوی قربو بتر سولر زکه کنم قونم خست سر برده تابوج مردوم ل راست نه بووا نه خیر لو خواني روستمش رزگار بو زانم مردو تازه حوصله شرکردنی نه تنانت تننت و عملیحات کشوی انگستچاو گریوم دکړبچ مناو گومبزو سر قبرستانی زور بسامو نه ترسام انجار دمی وستر چونک بی جندوک ببینم بهینم بردا شاخی ترغه هه با آمان و زمان دیانگود هرکس بشو بلای دابروا جندوکه دستیل دا دوشین نو نوی چند کسیان دگو کلوی کراون. کروون شوی که وردبارانی بحاری دباری با چونه و مال با انقصد رگم خسته اوی چونه نو هلولای بردکو چاو نور بوم خشپی گلایک حاشی بایک خرمی وردباران اگدهاد ددلی دا دادم گود او هاتن بزانم چونم دنجیون هر دبی جندوکه ببینم ل سره مان کثیر بموکس نهاد بنا همدی در کوتمو میلیار ریمګر کله رېبو شو رشی بهر کمتر رېګم بدیده کرد ل پردیتم رشی زلام ل برچاوم قوت بوته وا اها بخوا او جندوخی بن برته اتو تس تاقیم به تعقیم ترسان وا بل امر سن ما بو بو و در ریو برو ګوند پلبو جاش کی یک پر بو لګاران بچی ما بو به شونی او دار کته از چوبم نوفقیان لا سگ زور د ترسام فقه غلطه پد کړم لوش راحتم اگر سگم بوده هات داده هاد مو ببردو او را د کړ دا لبر مارملکش حل دهاتم وندزانی ماره بلام کدم دی من دالی وک خوم به درین به برد مرده کوژن منش ورده ورده غیرت مو برخوم د ناو لبر مر حل نه بتوانم بتونم سید محمدین شته حب پیم دوت خاله پېږ بوز ور بازا او شرکر او مشهور بو هميشه پیدا ګوتم اگر تو کور کې ترس نوبي دیارې خزمي مني جاريک منو خالو زاکم هر دکم ل سای ولات ټیک چون شهري وري 25 پا شا ګرداني تازه سر او تفنګ من پیدا کردبو پاشنیو روي 200 من ل شهري سبلغ در کوين ګوت ين رګه خطر او چته هيا جو من پیندا سيبر شور بون تو شي کبري کی سواکری بود. ګريدبوين ګوتې لراه خدا بگره چتتان چطه تان لسر رگیو من کاروانی برگول برگولده و روتیان کرد لو خبره ترسام رون کرد خالوزه کموتم یمتا استا لیمان نقومهو دیارتوشی شرطفنگ دوین تو دلی چی؟ کابره خاون خواهن قاوخانه سرجاده من دلگل بو که با تمه بو گوتي بگره شو مخالیستان لسلمن همه دمین خالوزه موتی هرچی توب وادکم لپر خالم رنګ بروین بکوجرین اگر بګرای نه و الله باندې خالم هېدی نن بزانی به هزار سال ماند چې همدامین وتی تو بګرېوه منهر درو لبن هاو راځي جګې خطر اسپکان من بکاب راي قاوچ اسپرد کبرګد خوش من هر یکه بلای کی دس لس سر پلپیت کول لس سر سرکوتين بلعم په سلامت گذراو تو شي چتهو لو سا و کوت د ک اگر قوم ما شرم دکردو بوم هلکوتایه چتند کوشت یعنی منیش خوم به پیاو زانیو د خوم را کر کم نبم هر دوکمان هر خین من لشدید بودج من بوېره هر شپکاو من نویرم بربره کانیکم ماینکم هبو زینکی کونې انګلیسین جده کړ بلای منو زورش ته کی باشو اسایبو لسابلغ میوانی مال سعید نویبم tikai کړدم بسواری ماینکم تا قونقلا ی وره خاتمه و سعید نالنی ولجدا کوتوا پیوتم ای مالد اودان بی زینکه همو خنگی ده مالی و چوم لای حکیم ملحمو درزی بونوسیوم تازه چوم سری زینکم کرد اونده بارانو تاول ده بو و اکبردی خرنچ بو بلام دیرا قومی سعید لهی من ناسک تربو من فری خوشویستان لیر داحتینا کتایی بشی نویمی خوید نوی کتیبی چشتی مجیوری هجار مکوریانی. تا بشی بختوربن.